بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین و صلی اللہ علی سیدنا محمد و عالی قبلا قبلن که برای اینکه که دوتا دو تا که کنار هم باشد رو بخانیم باید یکیش رو رفع کنیم یعنی برداریم درست شد؟ و راه برداشتن التقای ساکنه کسر خاندن نون تنگیم رو درست شد؟ خروف مقتعه رو هم خاندیم که در اول بیست و پرانی سوره از قرآن کریم به شکل قطع قطع, قطع خانده میشه هر حرفش به سورت تنهایی درست شد؟ خب امروز ما وقف انواع وقف و علامات وقف در قرآن کریم رو قاهیم خاند انشاء الله تعالى در درس الثانی و الوقف و انواعه. درس سی و سه. سی و بله. الوقف و انواعه، وقف و گونه های آن الوقف اما دون تغییر و اما اسکان و اما ابدال وقف هیچ تغییر بهش پدید نمی آید در کلمه درست وقف وقتی بخوام در یک کلمه وقف کنیم یا اصلا تغییر برایش ایجاد نمی شود و این که ساکین می گردد یا این که تبدیل می شود درست شد؟ یکی از اینها نیست جاهایی که تغییر نمی شد دقیق کنین در وضع ها هیچ تغییری درش ایجاد نشده و نمیشود در عبادی همچنان یسلونه ها صبرو و کانت همطور که مشاهده میشه مشاهده در کانت چون که ساکن هست ساکن ساکن دیگه همون به شکل که بوده مانده در سبرو باز هم اینجا مد هست در یسلونه ها باز هم مده و در عبادی باز هم مده در وابوها هم مده هست درست اگر یاد ما باشه قبلا خونده بودیم که یکی از گونه های ساکن حروف مدی بود یا نه؟ آ صبرو درست وای جمع داره یسلونه ها بادی و ها اینا خروف مد چون درش وجود داره لذای گونه ساکینه دیگه کانت هم که خودی ساکنش واضح لذا هیچ تغییر بهش پدید نمی آید اما جایی که ساکن میشه مانند خلق الله اینجا های ما چی داره زمه در های الله وقتی وقف کنیم میشه خلق الله زمه تبدیل به ساکین شد فل فلا یو نه فلا یو غیرون نه اینجا تشدیده اما بالاخره نون حرکت داره حرکت فتحه چون حرکت داره هنگام وقت ما باید حرکتش رو برداریم میشه؟ فلا یو درست شد. چی شد؟ ساکن شد. رجالون تنوین چی داره؟ زمه. درست آره. اگر ما،, ما و شما بنای عربی رو نداشتیم پیشش درست بود. حالا چون بنای عربی رو داریم بزاد زمه بگیم. درست شد؟ رجالون تنوین زم دارد. درست شد؟ اما هنگام وقف چه میشه؟ ساکین رجال یوم ایدن تنوینه؟ کسره نه کسره درسته کسره جنات نعیمی تنوین دارن؟ نه, نه. فقط چی دارن؟ کسره در همین صورت های چه میشه؟ حرکات تبدیل به؟ ساکن. ساکن. آره سکون یا اسکان میشه ابدال سومنگونه وقف ما ابدال هست باید تغییر داد تبدیل کرد. ابدال یعنی چه تبدیل و تنوین نصبی به الافل مادیه تنوین نصب رو به چی باید تبدیل کرد؟ الافل مادی. تبدیل و تنوین نصب به الافل مادیه. تن... تبدیل کردنی تنوین نصب با الافل مادی. تنوین نصب رو میدنیم چیه؟ آ دو تا دو تا فتحه رو بهش میگن تنوین نسبی صحیح شد دو تا فتحه تبدیل و عربیش که بخونیم اینطوری میشه تبدیل و میگم نه اول عربیش و تنوین النصب بالالف المديه تبدیل کردن تنوین نصب به علیف مددی مانند حسابن و هدن کردشی موشه حسابا و هدا سعیش شد؟ تبدیل کردن تنوین نصب به علیف مددی حسابن میشه حسابا هدن میشه خدا. خدا و و بخا آردوش یک نومد دارند. درست شد؟ آره؟ خیلی کسی هست که نفهمیده باشه؟ نسب دو دانه زبر. حسابا دو تا فتحه. دو تا فتحه تنوین میشن. تنوین نسبی. نسب یعنی زبر. سایه شد؟ فاهمیدیم همه گی؟ کسی جواب نمیده؟ ببیر دیگه چی رو تبدیل مونیم؟ مربوط تبدیل و تا المربوطه تی بلها تبدیل تای مربوطه یا همو به ها هیدو چشمه آره؟ تبدیل چی؟ تبدیل تای مربوطه به ها تبدیل تیگیر به هی گیر سعیه شد؟ سعیه شد؟ آره ماننده؟ دقت میکنین الى رب ها نازیرتون هست الى رب ها ناظیره ناظیره سعیه شد؟ آره دیگه بله. الواقعه تو چی میشن؟ الواقعه الواقعه صحیح شد دقت کنیم خب چی میگیم باید واقعه بیشه یعنی عین با ه جن بخوره واقعه نه واقعه صحیح شد یعنی ه باید به با وجود بیاید و و الا کلمه ناقص است دیگه نیست واقعه اگر واقعه نشوه کلمه ناقص میشه متوجه شدیم؟ پس وقف، خود وقف عبارت از توقف یا است هست، است. آره؟ خب، ما سه نوع است داریم، یا بدون تغییر، یا اسکان و یا هم ابدال در جایی که با مد, وصل با مد کلمه ختم شده باشه، هیچ تغییر برایش ایجاد نمی در صورتی که کلمه آخرش ساکن باشه هیچ تغییری درش ایجاد نمیشه. اما در صورتی که با چی بود؟ در صورتی که حرکت کوتا داشته باشه، چی تنوین باشه، چی یک حرکتی باشه، تبدیل به چی میشن؟ اسکان. در جایی که تنوین نصب باشه تبدیل به چی میشن؟ و در جایی که تای مربوطه باشم و با های با ساکنه تبدیل میشه تمام شد شد رو دیگه رو حرکت نمیده سعی شد تمام تا اینجا خب. آه بهناز بخوان رو دو تا آیه بخوان در على انواع البحث بسم اینجا در احد وقف کرد چی بچی شد؟ تارگیت تب... به های ساکن همه چی دنون زم ساکن تبدیل احسن تنوین زم به؟ ساکن تبدیل شد سایه شد؟ خیلی عالی. علا صراحیم؟ ساکن تنوین چی به چی میشه؟ با سکون یا ساکن. درست شد؟ هو العلم الدرس الثالث و 33 درس سيو سيو علامات الوقف في المصحف علامات الوقف في نشانه های وقف در قرآن کریم میم علامت وقف لازم میم نشانه وقف لازم هرگاه ببینین میم دائم علامت وقف لازم نیست میمی که اینطور پایین کشیده هست دراز هست آره این علامت وقف نیست میمی که قطع شده و بوریده شده هست اون میم علامت وقف هست صحیح شد؟ لا، علامت الوقف ال... ممنوع یعنی وقف معنی نکنی؟ نه، وقف ممنوع, ممنوع. ممنوع. است نباید؟ وقف کرد، لا، خودش معنیشه شد؟ نه کردن، نه، نه، نه نه نه نه کردن علامت و جواز الوقف و جواز الوصل امریکان نشان، آره، اکسند علامت یا نشانه جواز الوصل و جواز وقف. علامت و جواز الوصل مع الوقفه اولا وقف بهتر از وصل اقلی بیانگر جایز بودن وصل هست با این وقف اولا و بهتر هست درست مع الوقف اولا با این وقف اولا و بهتر هست باشی از وقف بهتر با همراه تموم؟ صالی و جواز الوقف مع الوصل اولا بهتر با اینکه وقف هم جایز هست معانقاً علامتو د... علامتو الوقف علا احد علامت علامت تعانق وقف علأحد الموضعين موضعا علامت موانقه یا تعانق وقف است بر یکی از دو تا جایگاه موضع جایگاه دو تا جایگاه علامت تا... تعانق چی علامت وقف است در یکی از دو تا موضع در یکی از دو تا موضع یعنی اگر به یکیش وقف کردیم به دیگرش نمیشن. نمیشن. نمیشن. نکنیم نمی توانیم باید چی واسل کر وصل کرد علامت تقار... تعانق در, یک در یکی از دو تا موضع یا در اولش یا در آخرش ذالک الکتاب لا ریب فیه هدل للمتقین اگر در لا ریب وقف کردیم در فیه میشود وقف کرد خیلی عالی و صل الله علی سیدنا محمد و آله